آدم های شوخ زندگی تلخ است آقایم زندگی راهی پر از خارم است زندگی سه تا دفتر دارم این دفترها رو با جمله درباره زندگی پر کردم تا حالا شانزده هزار و خورده جمله شده زندگی این است زندگی آن است زندگی این طور است زندگی آن زندگی این زندگی نوعی استرابه زندگی صخره ای بلند و سربل عبور است. زندگی آب روان است. زندگی به صحنه نمایش مید. آخر آخرین دفترم هم درباره زندگی نوشتم. زندگی چیست؟ بله اینطوری است دیگه. زندگی تلخ است. بگذارید تعریف کنم آن وقت شما خودتان بگویید زندگی تلخ است یا نه؟ بی کار و بیار میگشتم نه به این دلیل که ارسو میراسه هنگفتی به هم رسیده بود نه چون کار پیدا نمیکردم دو روز بود چیزی نخورده بودم جز آب توی پارک نشسته بودم و داشتم درباره ماهیت زندگی فکر میکرد مردی کنارم نشسته بود همین که روزنامهش را خواند و خواست تایش کند و در جیبش بگذارد گفتم میدین یه نگاهی بهش بندازم روزنامه را به طرفم دراز کرد فوری رفتم سراغ های استخدام یکی از ها را که خواندم نور امیدی انگار در دلم روشن شد کارگر زن و مرد در هر سن و سالی میخواستند روزنامه را به صاحبش برگرداندم نبایست وقت رو ترف کردم. آخرین نیرویم را جمع کردم و دوان دوان به جایی رفتم که نشانیش را در آگهی نوشته بودند در مرکز مهم تجاری شهر در طبقه پنجم ساختمانی بزرگ از ترس آنکه ازیتم کنند و سر به سرم بگذارند سوار آسانسور هم نشدم به طبقه پنجم که رسیدم از خستگی روی آخرین پله پلکان نشستم. واحد شماره 18 روبروی بود. همان واحدی که قرار بود در آنجا به هم کار بدهند. کلی آدم می‌رفتند تو و می‌آمدند بیرون. آنهایی که می‌رفتند تو امیدوار بودند. آنهایی که بیرون می‌آمدند عصبانی و اخم کرده. برای آنکه جلوی کارفرماهای آینده سرحال به نظر بیایم، کلی استراحت کردم. بعد از در واحد شماره 18 داخل شدم. به اولین نفری که بهش برخوردم گفتم یا آگهی استخدام توی روزنامه دیدم واسه همین مرد که به عبدالشی ها میمانست با دست به جایی اشاره کرد و گفت برو تو و منتظر باش توی سالن صندلی ها و مبل ها پر بود شش زن و هشت مرد نشسته بودند پنج نفر هم سر پا ایستاده بودند از بیچارهی مثل خودم پرسیدم یعنی کارشون چیه؟ شما میدونی؟ گفت نمیدونم. به نوبت می تو یکی میبینی بینی ده دقیقه اون تو میمونه، یکی نیم ساعت بعد با داد و فریاد میان بیرون حرفش نیمه کاره ماند دلی که از سالن انتظار به آن یکی اتاق راه داشت یک دفعه باز شد مرد چاقی که صورتش مثل لبو قرمز شده بود خیس عرق داد و فریاد زنان بیرون آمد بی همه چیزا، بی پدر مادرها عوصیها همانطور داد و فریاد کنان رفت گفتم حتما استخدامش نکردن واسه همین عصبانی شده. مرد بغل لستیم گفت: فکر کنن اینهاش خودت که دیدی. هر کی میاد بیرون همین جوری که دیدی داد میزنه، فریاد میزنه. عبداشی گفت: نوبت کیه؟ زن جوان خوشپوش و آرایش کرده گفت: نوبت منه. بعد با ناز و ادا رفت داخل اتاق. از یکی که مثل خودم منتظر نشسته بود پرسیدم یعنی اون تو چیکار کار میکنن؟ گفت به گمونم امتحان میگیرن توی ذهنم شروع کردم به مرور مطالبی که توی مدرسه یاد گرفته بودم با خودم گفتم چون اینجا دفتر تجاری است لابد امتحان ریاضی میگیرند جدوار ضرب را یک بار توی دلم از اول تا آخر گفتم بعد همانطور که داشتم نحوه محاسبه بحر و تخفیف را توی ذهنم مرور میکردم یک نفر از داخل اتاق صدای جیغ آمد. در چهارتاق باز شد و زن که صورتش سرخ شده بود بیرون پرید. داد میزد کسافتا آشغالا او هم داد و فریاد کنان و رفت. از در که باز مانده بود صدای قهقهی کلفته جمعی مردانه بیرون میامد گفتم، یعنی yani با سن کاری کردن؟ بغل دستی هم گفت، گمون نکنم. اگه کاری کرده بودن داد نمیزد شاید سآل سختی پرسید. جوانی که کمی آن طرفتر نشسته بود گفت: بله، حتما واسه زن سخت بوده. بغل دستی هم گفت: چی میگی پسر جان؟ مردو هم داد میزنن. آبدارچی پرسید: نوبت کیه؟ همان جوان که در مورد آن زن بیچاره گفته بود حتما واسه زن سخت بوده، داخل اتاق شد. من تازه شروع کرده بودم به مرور نحوه محاسبه بهره دوبل در ذهنم. که یک دفعه جوانی که تازه رفته بود داخل اتاق داد و فریاد کنان بیرون پرید این چه کاریه؟ بعد همانطور که فریاد میزد خودش را به طرف راه پله ها پرد کرد بغل دستی هم گفت این جوون حتی به اندازه اون زنه هم طاقت نیاورد چهار نفر بعد از من آمده بودند و داخل صفحه انتظار شده بودند آدم های دیگری هم مرتب وارد می شدند کسی که نوبتش می شد و داخل می رفت، پنجشش دقیقه بعد خیس عرق با صورتی قرمز مثل لبو داد و فریاد کنان و بد و بیراه گویان بیرون میآمد. غیابدارشی رو گرفتم که تا کسی رو که نوبتش شده بود به داخل میفرستاد خودش غیبش میزد. پرسیدم اون تو چه بلای سر آدم میارن؟ گفت: آزمایش میکنن. خندی پیر زن و پیرمرد هم مثل بقیه طوری که انگار بخواهند جانشان را نجات بدهند بیرون پریدند داد و فریاد کنان می رفتند. هر بار که یکی از اتاق بیرون میآد از لای در صدای قهی خنده آدم های داخل اتاق می آمد وقتی می دیدم همه اینطور داد و فریاد کنان از اتاق بیرون میآیند و میروند از یک طرف خوشحال می شدم و با خودم می گفتم پس اینها را استخدام نکردهاند و احتمال اینکه استخدام شوند بیشتر می شود. از طرف دیگر میترسیدم و با خودم می گفتم آن تو چه آزمایشی می کنند که همه ها بد و بیراه گویان بیرون میآیند ترس داشت وجودم را میگرفت. اگر دو شب گورسته نخوابیده بودم هم کار را هم آزمایشش را هم امتحان را ول میکردم و میرفتم. اما ترسان و لرزان با امید استخدام شدن منتظر ماندم پیرمردی که پیش از من به داخل اتاق رفته بود با صورتی به رنگ گچ دیوار از اتاق بیرون. نایی برایش نمانده بود که مثل بقیه داد و فریاد راه بیاندازد پرسیدم امون جان اون تو چی کار میکنن؟ گفت نگو و نفرس برو با چشمای خودت ببین ابتاشی پرسید نوبت کیه صدایم را در نیاوردم کسی که نوبتش بعد از من بود گفت نوبت شماست گفتم شما به فرمائن. من عجله ندارم گفت، نه، مگه میشه، من هیچ وقت نوبت کسی دیگر رو نمیگیرم. نه، مرد نالوتی، اگه توی اتوبوسی تراموایی مترویی بودیم، چنان به آرنج هلم میداد و نوبتم را میگرفت که بیاو و ببین. حالا واسه ای بود، نوبت شناس. خواهش میکنم بفرمایین؟ نه، به خدا نمیشه، اول شما بفرمایین. آبدارشی از پشت هلم داد داخل اتاق و در راست از پشت بست. پیش خودم دعا میکردم میکنم منو شرمنده نکن خودت بهم قوت قوتت بفرما کاری کن از این آزمایشه و امتحانه هر هرچی هست سربلند و رو سفید بیرون بیام و بعد از این همه بیکاری صاحب شغل و درآمد بشم تو که رفتم نمیدانم از گرسنگی بود یا از ترس چشمایم سیاهی میرفت داخل اتاق دفتر کار بزرگ و شیک و مبلهی بود نتوانستم درست بشمرم اما فکر کنم حدود ده نفر آنجا بود هنوز داشتن پشت سر کسی که پیش از من بیرون رفته بود، قهقه زنان میخندیدند و عشق چشمشان را که از فرته خنده سرازیر شده بود پاک میکردند. چون همگی آدم های چاق و شکمدار و گردن کلافت بودند، خندیدن بهشان میامند. رفتم جلوی میزی که رویش شیشه بود و پشتش مرد شید پوشی نشسته بود. اولین سؤالی که آن مرد از من کرد این بود. از شوخی خوشتون میاد؟ یعنی بایست چه جوابی میدادم تا طرف خوشش میآمد و استخدامم میکرد ادمهای توی اتاق را یکی یکی نگاه کردم هیچ کدام مثل من نبودند همگی خوشپوش و چاق و چله بودند لبهایشان به سیب قرمز میمانست گل انداخته بود با خودم گفتم حمچو ادمهای حتما از شوخی خوششان میآید لبخندی زورکی زدم و گفتم البته که از شوخی خوشم میاد قربان. من شوخی رو خیلی دوست دارم مگه آدمی پیدا میشه که از شوخی خوشش نیاد؟ گفت حالا که از شوخی خیلی خوشتون میاد بشین روی این م... گفتم سر پا وامیستم نه نمیشه حالا که شوخی دوست داری باید بشینی بین شوخی و نشستن ارتباطی پیدا نکردم. اما برای آن که نشان بدهم حرفشان را گوش کرده روی مبل نشستم و گفتم دشکر میکنم نه نه روی اون مبل نه روی این یکی بشین روی مبلی نشستم که با انگشت اشاره نشانش میداد گفت همه اینهایی که اینجا میبینی خلاصه همگی عاشق شوخی هستیم <تصفح> <تصفح> خیلی خوب قربان بنده هم دلم برای شوخی ضعف میره مرد شروع کرد از این در آن در حرف زدن هر از گاهی به سوالهایی که از من می کرد جوابهای کوتاه و مودبانه میدادم. اما انگار داشت اتفاقهایی برایم برایم میافتاد. خیلی ببخشید معذرت میخوام گلاب به رویتان نشی همچنان گرم شده بود که نگو گرما رفته رفته بیشتر میشد دیگر نمیشد اسمش را گذاشت گرما رسما علو گرفته بودم. انگار تخمی آفتاب بودم و روی تاب داغ داشتن بوییم یالالعجب یعنی مریض شده بودم تا آنجا که می دانم تب از سر شروع می شود نه از ته به چپ و راست پیچ و تاب می خوردم اما فایده نداشت من که پیچ و تاب می خوردم آنها هم بهم به نگاه میکردند و میخندیدند با خودم گفتم خب خودشون گفته بودن اهل شوخی و خندند من هم لابد عداهای خنددار در میآورم تنم میسوخت ما سعی می کردم مثل آنها بخندم. زیرم چنان داغ شده بود که گفتم الان است که آتش بگیرم. مرد پشت میز گفت: چی شده؟ ناراحتی داری؟ <تصفيق> اگر بگویم مریضم، شاید استخدامم نکنند. برای همین گفتم: نه خیر، سالم و سرحالم، مثل شیر. پس چرا اونطوری پیچ و تاب می‌خوری؟ <تصفيق> از خنده رود بار می شدند برای آنکه بهانه پیدا کنم گفتم خیلی ببخشین بنده بواسیر دارم به اجازه میفرمایین سر پا ویسم نمیتونم بشینم کم مانده بود از خنده روی زمین ولو شوند عرق از چهار ستون بدنم سرازیر بود. عرق پیشانیم را پاک کردم و بلند شدم. میخواستم سرشان داد بزنم برای چی هر, هر می خندین اما خودشان گفته بودن اهل شوخیاند آن وقت ممکن بود استخدامم نکنند. مرد پشت میز دکمه زنگ را فشار داد. آبدارچی آمد. به آبدارچی گفت. یه <تصفح> چایی واسه آقا بیار. <تصفح> این حرفش خوشحالم کرد. پس مرا پسندیده بودند. شکمم از گرسنگی قار رو گور می اگر چای داغ میخوردم خوردم، را می خوابند. آبدارچی چای آمد. من سر پاییستا بودم استکان را از توی سینی برداشتم و همین که دو به قند توی آن انداختم چای پف کرد و شروع کرد به کف کردن کفی بود که از استکان به هوا میرفت مانده بودم که چه خبر شده و چه اتفاقی افتاده استکان را پرت کردم روی زمین تمام سر و لباسم شده بود چای کفالود چای داغ دستم را سوزنده بود خلاصه گف داده بودم آدم هایی توی اتاق دیگر از فرت خنده داشتن روی زمین ولو می شدند. راستش خنددار هم شده بودم یکیشان قهقه زنان گفت <تصفيق> این در روبرو رو باز کنه یه پرونده روی میزه اونو ورش دار بیار <تصفيق> دری را که نشان داده بود باز کردم خبری از پرونده نبود همه جا رو گشتم نبود که نبود ای خدا اگر بگویم پرونده نیست بهم هم نمیگویم بی ارزه ترسان و لرزان گفتم پرونده نیست قربان مرد که هنوز در حال خنده بود گفت <تصفيق> بیا ای انگار اینجاست <تصفيق> داشتم می آمدم که یک دفعه گفت ای بابا درو که واز گذاشتی زود ببندش در رباستم این بار یکی دیگرشان شروع کرد به پرسیدن اما نمیتوانستم به سوال جواب بدهم به عصب افتاده بودم همه بدبختی ها پشت سر هم ردیف شده بودند و یکی یکی سرم می آمدند اسمتون چیه اسمم آ اسمم احمد آدم توی اتاق از خنده روده بر شده بودند. نمیدانم این بلاها چه بود سرم میآمد؟ بعد از چهل سال و بوغی کارگیرم آمده بود آن وقت یا نشیمنگاه هم داغ می کرد، یا چای را می ریختم، یا ادسه امانم را می بارید. چند سال دارید؟ چه... چه... شه. چهل و یک... شه. از خنده روی زمین ولو شده بودند. یکیشان گفت... <تص> اون رو به رود از شوی هست برو یه آب به صورتت بزن <تصفيق> صورتم را شستم کمی حالم سر جایش آمد عدسه هم بند آمد اما این بار چشمهایی شروع کرد به تر شدن خیس شدن چشمها بود. رسما گریه می کردم نمیشد تا آن موقع همچون چیزی سرم نیامده بود با خودم گفتم نکن از گرسنگیه شاید نمیدونم که بد مسخری مسخرهی خاص شده بودم آدم ناقصی را که یا عدسه می میکند یا شیون برای چه استخدام کنند <تصفيق> برای چی گریه میکنی <تصفيق> من نمیدونم مادر خدا یامرزم چنان میخن میخندیدند، علکی نمیگویم. چنان شیون و زاری راه انداخته بودم که آن سرش پیدا یکیشان یک شیشه اودو کلون از کمد در گفت. <تصفيق> بیاین اینو بو کنین. حال تو سر جاش میاد. شیشه رو گرفتم جور دماغم و نفس عمیق کشیدم. به نظرم اودو آرام بخش بود. گریم بند آمد. این بار به سکسکه افتاد. یا گریه می یا ادسه یا سکسکه پس چرا منتظرند و بیرونم نمی کند؟ قبلاً چه بودین؟ اول، اولش نقاشی داد زدند خوبه، بخص کافیه، ساکت شو. خنده کم مانده بود جان از آن جای نابدترشان در برود <تصفيق> لطفا در این کمود باز کنید همین که در کمد را باز کردم انگار توپ در کردند بوم از ترس روی زمین خوابیدم دیگر بدتر از این نمیشد لابد استخدام بی استخدام ندارد از خنده می کشمشان یکیشان که از بقیه درشتر بود گرد روی میز را رو فوت کرد کمی بعد قهقه قه زنان پرسی؟ <تصفيق> چرا خودتون رو میخارونید؟ والا دیروز همون بودم، تمیزم نمیدونم چرا تنم خارش گرفته کک نبود، چون کک یک جای آدم را میزند من همه جایم میخارید، خارد، خارد، خارد مسنترینشان پرسید میزان تحصیلاتتون چقدره؟ دانشکده ادبیات رو تموم کردم. گوشش را آورد نزدیک دهانم گفت: بلند بگین، گوشم سنگینه. توی گوشش سمعک بود. همانطور که خودم را خارت و خارت می‌خاراندم، توی گوشش داد زدم: دانشکده ادبیات. ها؟ دهانم را به سمعک چسباندم همین که گفتم ادبیات، چیزی مثل آب از سوراخ روی سمعک پاشید روی صورتم. مانده بودم که چه اتفاقی افتاده روی زمین ولو شدم با خودم گفتم اینجا دفتر کار نیست خانه جن و پریست گرسنگی هم از طرف دیگر فشار میاورد می آورد و چشمهایم سیاهی میرفت فقط من روی زمین ولو نشده بودم آنها هم از خنده روی زمین ولو شده بودند مدتی روی زمین قه زدند و بعد مثل قشی ها روی زمین دست و پا زدند بعد کم کم به خودشون آمدند پا شدند دیگر نمی خندیدند همگی به تاجر های جدی تبدیل شده بودند دیگر شوخی موخی در میان نبود یکیشان گفت آفرین خیلی خوب مقاومت کردی تا الان شاید چهل نفر اومده اما هیچ کدوم نتونستن تا آخرش مقاومت کنن حتی بعضی هاشون توی اولین آزمایش فرار کردن متوجه نشدم غربان در برابر چی مقاومت کردم تو آمریکا یه کارخونه تولید لوازم شوخی هست به ما پیشنهاد همکاری داده چند تا لوازم شوخی هم فرستاده خب از این شوخی ها ممکنه سنگین باشه خطرناک باشه برای همین گفتیم قبلا یا آزمایش بکنیم <تصفيق> بعد شروع کردم به صحبت با یکدیگر میگن تو آمریکا ده هزار تا مغازه هست که این وسایل رو میفروشه. بله بله سالی بیشتر از 20 میلیون دلار سود میکنند فکر کنم اینجا هم فروش خوب باشه آزمایش هم نشون داد که هیچ کدوم خطرناک نیستن. کارخون پنجان و جنس واسه فروش پیشنهاد داده. بقیهشونم بگیم بفرستن، تو این کار سود هست، چون مردم ما از امریکایی ها شوخترن و شوخی رو بیشتر دوست دارن یکیشان که از همه چاختر و مسنتر بود، به یکی که حدس میزنم، منشی شرکت بود، رو کرد و گفت یادداشت کن، دو هزار عدد صفحه داخت مخصوص روی صندلی ده هزار قوطی گرد خارش آور، پنجصد صندوق اتکولون سکسکه آور، پنج هزار دو جین سمعک آبپاش، هزار شیشه آب عشقاور، پنج تون آب نبات دیوانه کننده، سی هزار قوطی کپسول منفجر شونده، همش رو بنویس، فوری بفرستن چون ازم تعریف کرده بودند، لابد استخدامم میکردند، اما راستش نفهمیده بودم کارم چیست گرم صحبت با یک دیگر شده بودند و مرا فراموش کرده بودند به یکیشان که بیشتر از بقیه سر به سرم گذاشته بود گفتم آقا ببخشید، واسه کار قبول شده گفت ها؟ آخ، ببین، فراموشت کرده بودم آره، بین دافتالپا تو از همه مقاومی بودی تو را استخدام میکنیم به منشیه رو کرد و گفت به حسابداری بگو به صندوق بگن دونیم لیره به این آقا بدن بعد رو جرد به من و گفت قرار شرکتمون هر ماه از امریکا انواع دیگه این وسایل شوخی رو بیاره تو؟ سوم هرماه بیا اینجا. وسایل شوخی جدید و روت از آزمایش میکنی بعد میری از صندوق دو نیم لیرت رو می سوم هرماه یادت نره خندیدم <تصفيق> او هم خندید. گفتم خیلی آدم شوخی هستیم. منم شوخی رو خیلی دوست دارم. می او هم می با اینکه گرسنه بودم و دلم ضعف می همه نیرویم را جمع کردم و یک مشت محکم خواباندم توی دماغ یارو عقب عقب رفت نشست روی زنی از دماغش خون فواره میزد بقیهشان هم از تعجب خوشی شان بود گفتم یه شوخی کوچیک باتون کردم <تصفح> آخه چه شوخیه؟ به این میگه شوخی خرکیه خب چی کار کنم؟ ما فقیریم با ماهی دونیم لیره درآمد كه که نمیتونیم از اون وسایل شوخی وارداتیتون بخریم واسه خاطر شما نباز شوخی هم بکنی؟ شوخی بی وسایل هم اینجوری میشه در رو محکم به هم زدم بیرون آمدم فوری به خانه برگشتم و در آخرین صفحه دفترم که پر از فلسفه زندگی بود این جمله رو نوشتم. زندگی شوخی تلخ